سلام عرض میکنم خدمتی شنوندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید در این قسمت در مورد مزاید صحبت خواهیم کرد باید دقت کنیم که این کلمه در جاهای مختلفی به کار می روید اما آنچه که در موردش توضیح می دهیم در خصوص کاربارد این کلمه در اجرای احکام مدنی دادگستری است فرض میکنیم حکمیساده شد از بنف آقای الف که به منجوان آقای ب باید یک میلیارد تومان باقی الف بدهد. اکنون در مرحله اجرای حکم می‌کنیم یعنی جایی که می‌خواهیم آن یک میلیارد را وصول بکنیم. خوب آقای الف که محکوم لحظه، باید انبالی رو از آقای ب معرفی بکنه. فرض می‌کنیم انبالی رو معرفی کرده است. مثلاً چند تخت فرش. این انبالی که معرفی شده است از طریق مزایده به فروش می‌رسد. یعنی چه؟ یعنی این که کارشناس می آید این فرش ها رو عرضیابی می کند فرض می کنیم این چهار فرش توسط کارشناس عرضیابی شده است به پانصد میلیون تومان بله کل طلب رو پوشش نمی داد ولی حد اقل بخشی رو پوشش می دهد مال دیگری هم نتوانستیم پیدا کنیم قیمت پایه می شود پانصد میلیون تومان خب در این خصوص آگهی می شود روز مزایده مشخص می شود و اشخاص می توانند در اون روز شرکت کنند و اقدام به خرید این فرشا بکنند قیمت پای 500 ملیون تومان است و در مزایده هم بال به کسی داده می شود که بالاترین قیمت را بدهد آنچه که گفتیم مربوط است به فهم ابتدایی از داستان مزایده که به ما در اجرای احکام می گویند منابع این بحث‌های تخصصی و فنیان و سایر مسائلی که در این خصوص پیش می‌آید، اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارد، چون امور بسیار فنی است و باید در این گونه موارد به یک متخصص حقوقی مراجع شود.